اما حدیث هم العین و حق عین یعنی تش چش تش زخم حق و در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خدا ده چش زخم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم دسترشون بر اینه که اگر کسی چیزی مورد تعجبش واقع شد فلی برک یعنی تبریک بگه اللهم بارک یا بارک الله فیک یا الله خیر برکات درش بینداز با زبون خودت الله خیر برکت درش بینداز مبارک باشه پر برکت باشه خدا تعالی برکت بکنه دعای خیریت برای طرف بکنیم خدا خیرش رو بهش بده اینها خیلی مهمه تا اینکه در دل اون اثر حسادتی که سوی چشت زخم میشه از بین بره چون اصل حسادت از بین بردن نعمت دیگه بغادر همین در دعای جبرایل و رسول الله صلی, صلی و سلم چی داریم؟ بسم الله عرقی که من کل شین و که من شر کل عین حاسد عین حاسد هر چش زخم حسودی یعنی هر کسی که حسود با حسادت چش میزنه هرچند که شاید مرتبطم نباشه یعنی ولی خب بیشتر اینه که معمولا کسانی که چش میزنن حسادتشونه اصل بر اینه خاطر همین اینجا در حدیث من عین حاسد اصل اینه که از روی حسادت به خاطر همین اصلا خواستش با دعای خیر و برکت و خیرخواهی برای طرف مقابل همیشه خیرخواه مردم باشی چش حقه و درمان چش سخت دو راه. یا اینکه از آثار بدنش وزوش یا غسلش یا آب دهنش چیزی بگیریم که استفاده بکنیم یا با خوردنش یا با ریختن روی خودمون که اثر اشتر رفتار ببین بره یا اینکه نمیدونن که, که چشمه اون که خودمون رقیه شرعی بکنیم که بارها توضیح دادم رقیه شرعی خصوصا از سوره خوندن هفت که در سنت آمده یا معوذات که رسول الله صلی که هیچ تلسیم جادویی و حسادتی نیست مگر با این درمان بشه با این سه تا قلقله والله احد قل اعوذ بر خیلی مهمه خصوصا درمان کردن خود با این سوره فاتحة ستقول العين حق تش حق ما ان يعني ترجمة حديثية طرف و وبحث ما وراء اون حقيقتي الان هسه مثلا تش ذات حقيقتي طبيعيه يعني خب الرسول بهم خبرده و ان ما منين يعني را ها منكرش يعني تش زخم وفلان از ازين حرفا حقيقتي الآن الان درسته که اینجا داره میگه که چش زخ حقه ولی خب میخواد گجذت بکنه که ای مؤمن تو, تو حسود نباش تو چش نزن و تو دعای برکت بکن خیرخواه باش اصبر این که محبت باشه اصبر این خیرخواهی باشه نه اینکه حقد و کینه و بغض و نفرت باشه چرا حسود دیگرانی؟ چرا چشم دیگران میزنی؟ ولی که فضل الله یوتی من یشا خدا, خدا من به هر کسی فضلی داده یک نعمتی داده چرا یعنی نه اصلا مسئله خود به خود اعتقادی میشه یعنی خود حسادت وقتی که در دل تو بیاد چرا فلانی داره چرا مثلا فلانی ماشین فلانی داره من ندارم چرا فلانی مثلا حتی تو تحصیل میاد چرا این رفته مدین من نرفت یا چرا رفت مثلا میفهمه من نمیفهمم چرا مثلا در نعمت ها چرا فرزند داره من ندارم چرا این معدد من معدد نیستم این چند تا همسر داره من ندارم حسادت میاد والله دو دل میاد و نباید باشه یعنی ما باید این قلب رو درمان بدیم و خودمون رو اصلاح بکنیم چون گفتم منافات داره با ایمان از چه جهت منافات داره از این جهت که اعتراض به قدر الهیه باقر. و قدر الهی ما به قضا و قدر رکن ششم ایمان تو بنا بر قدر خیره و شره تو یک ی که ازش محروم هستی تو داری نسبت به اون حسادت میکنی چون دیگری داره وقتی که اعتراض بیاد چرا من ندارم دیگری داره این خدشه در اصل ایمان و اصل توحید موارد میکنه پس موازب باشی که حساده در دلمان نیاد نسبت به کسی اگر در دلمان من درمانش بکنی با دعای خیر و برکت